السلام علیک یا ابا عبدالله سلام بر که چراغ هدایت است و کشتی نجات و سلام بر شما عاشقان کوی حسین علیه السلام السلام علی وعلى أولاد الحسين وعلى أخحاب الحسين يا ليتنا سلام ما رو در عصر ششومین روز از ماه محرم بپذیرید از آدویهاتون قبول سرتون سلامت و عجرتون با خدای حسین رایه سلام ای عشقمه ناب و رؤیای خوش و خوابم ای عشقمه ناب و خوش خوابم ای مستی دنیا و ای حضرت عربابم آدم نرود ناله خواهر بیتاب تو آیات حسین منی نور دو این منی آیات حسین منی ای کشنه دور از وطن ای کشنه سفار تن کشنه دور امروز هم در خیمه اعزای آقا سید و شادو علیه السلام بخش مختلفی رو تقدیمتون خواهیم کرد. بخش با کاروان کربلا رو خواهید شنید. بخشی رو با نام درس های از زبان حجات و, و مستمین استاد دهشری تقدیمتون خواهیم کرد. بخشی رو درباره شرح خطبه منای عزت عباویلالا سیناریه السلام، در خدمت و جتر اسلام و مستمین استاد لاجبهدی خواهیم بود وسب غم و قلب من قصده سنگ و آینست گل میکنه آه دل روی لبم با غر نفس گل میکنه آه دل روی لبم با هر نفس آتش دلم ببین آتش دلم ببین ناله حرم ببین آتش دلم ببین ناله حرام ببین دارم بلد نبایی بلاب نابو این بلاب نابو این اوهات که جدا ایم جدا گفتم خدمت همه شما در برنامه میزبان و الرسان و مستمین استاد لajevadi هم هستیم و در بوریه خطبه منو از زبانیشون بیشتر مطلب رو میشتوید. بیشتر مطلب رو میشتوید. سلام میکنم به شما خیلی خوش آمدید. قبول باشه از حضوریات. بخواهی شما میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز ارزه سلام و عرض تصدیت دارم. امیدوارم که همه از آداری عزیزان و شما و زحماتی که میکشید مورد قبول آقا امام ما علیه سلام قرار بگیره در خدمتی شما هست خیلی ممنون و چکر از حضورتون بریم مطاق فرمان باز میگردیم یه شاقخت بحثمون رو هم آغاز خواهیم کرد. وین و سخت است مردی آسمانی در سرزمینی غریب در کرانه افق ایستاده باشد و شاهد شهادت عزیز ترین هایش باشد بهترین اصحاب و یارانش رفتند جوانش که او را خلقن و خلقن و منطقن به یاد رسول خدا میانداخت. ر. امانتهای برادر هر دو رفتند و اوست که بدن پار پار یادها را به خیام می آورد آی ابراهیم خلیل و رحمان می بینی که فرزندی از تبار تو چگونه فرزندانش را در منای عشق به مسلخ می برد می بینی که قربانیش را چگونه تقدیم خدا می کند؟ امروز چرا ما نگریم و چرا موج عشق از دیدگانمان در خروش نباشد؟ مرید پیر مقانم زمن مرنج شیخ چرا که بعد تو کردی و او به جا <صحوب> شاه وای ای اهل حرم اهل حرم وای اهل حرم وای اهل وای چشم از لبهای خوشگ از در وای وای می میرم سران جدا از پیکرش وای وای وای داغ تو کرده مه تیرا انگشت زبونی گیره آخر برات میمیره حسین غریبه موجا چشم ما غزنه فونه اشک علی غارون مادر فراش خونش و سان غریبه ما و سان روز گذشته ای که خدمت شما عزیزان بودیم طبق اون بخش بندی که ما در خطبه منا انجام دادیم بخش اول رو به پایان رسوندیم که آیاتی بود که حضرت عبا عبدالله علیه سلام به اونها اشاره داشتن و آخرین آیه در بوری امره معروف و نحی ازمون کرد بود که تا حد امکان و فرصتی که داشتیم بهش پرداختیم از امروز بحث جدید خطبه منای حضرت عبا عبدالله علیه سلام رو آغاز خواهیم کرد و در خدمت وجهت و رسال و مستمی رستا داجو وردی خواهیم داجو وردی دوست خشمانم همطوری که حضرت عبدالله 700 نفر از یاران و در حقیقت جمعی از بزرگان مشهورین گروه های اجتماعی از علما از اقوام رو از جهان اسلام جمع کردن هم که خلاصه بسیار جامعه ایرام شما فرمودید حضرت اومدن نکتری رو مطرح کردن تکلیف روحانیون ربانیون و توده مردم رو مشخص کردند. و نهایتا منجر شد به این که حضر تذکر دادن که جامعه ای که امر معروف به اون عمل نشه و پوشش دعوت به امر معروف نباشه تمامی فرائز استقامت و قیام فرائز نخواهد بود yes. فرائز عمل نخواهد شد. در فقره دوم حضر نکیب بسیار عجیب و جالبی رو مزهر میکنن که من امروز مرور میکردم به خطبه احساس کردم که واقعا کنه هزت دارن برای امروز ما و جامعه دینی ما و جامعه اسلامی ما دارن صحبت میکنن که <تصفيق> ما میگیم جامعه آی من این بلد. رو بگم که تصور نشد داریم فقط در محدوده کشور ایران, ایران صحبت ایران. میکنیم یا در روی قوم صحبت میکنیم نه اینگونه نیست ما داریم کل جامعه اسلامی رو هلی. میگیریم نه. که الان در جهان وجود داره بلد. و دارن زندگی میکنن. من جمله ما همه مخاطب دین انسانه و جامعه است. اونایی که میخوان با فت حرکت رو کنند بله. و تذکراتی که میدن تذکرات برای جامعی و انسان انسانهاییست که میخوان به بالا برن و ارتقای وجودی پیدا بله. کنن مقصود جامعه خاصیست بگیم مونا خوبن ما بدیم ما مو خوب اونا اصلا این نیست تحلیل حقائقه حضرت بله. اصابه رو مورد خطاب قرار میدن اصابه چه کسانی هستن می در زیارت عاشورا می خونین اللهم للاصابهه الذی جاهدت الوسی بله. اون اسابه اون گروه های اجتماعی نیرومند قدرت گرفته ایست بر اساس منافع الزامن هم اینجونی نیست که حساب های خوبی باشن یا آدمای بدی باشن نه یک گروه های شک گرفته و قدرتمند و نیرومند که حالا یا بر اساس ثروت یا بر اساس علم یا بر اساس نقش اجتماعی اینها شکل گرفتن دور هم جمع شدن گروهی هستند قدرتمند و نیرومند حضرت اینا رو خطاب میدن اولا اینها چه خصوصیت هایی قدرت چون از کجا گرفتن چه وظائفی دارند چه کوتاهی رو کردند اولین و بیشترین حقی رو ضایع کردن حق چه کسانی است و به ادامه اون چه حقیق دیان تضیعی شده؟ به تعبیر راقبه عبد استخفاف کدوم؟ گروه رو در جامعه استخفاف یعنی خفیف کردن، ذلیل کردن. بله. که باز آقا و میفهمن شما رو دعوت ما رو دعوت کردید تا ما رو عزت ببخشید، ما رو تعبیر حضرت میگه خار کردید، کوچیک کردید. درسته و اینها از کنم حضور شما که چه حقوقی رو برخود چون قائلن بر اساس اون حقی که قائلن چه اقداماتی رو میکنن بله. چی میشه این اصابه ای که نیروهای قدرت هایی که در جامعه شکل گرفته به جایی که بیان حق خواب باشن حق جو باشند به دنبال قدرت ها میرن و سکوت میکنن سکوتشون باعث میشه که حق عموم مردم زائیه بشه مکته لطیفی که هزت میفرماین بیشترین حق رو شما کوتاهی کردید ای گروهی که اینجا نشستید و نماینده جهان اسلام هستید به حق الائمه شما حق ائمه ها رو حق اهل بیت رو که محور بودند مصباح بودند ولی بودند هادی بودند منذر بودند اینا شما حق اینها رو از بم... بیشترین حق رو که زایی کردید شما اسابه شما گروه های توانمند، شما جریانات قوی اجتماعی، سیاسی، تربیتی اولین کاری که شما کردید، شما و بیشترین حقی رو که زایعه کردید، حق عین است. بله. باز من برمیگردم به تیتر بحث که دوستانی که دارن بحث‌ها ادامه میدن، کلام آقای عبدالله زمانیه که هنوز از کنم خدمت شما معاویه زنده است، اواخر عمرش. اقداماتی انجام داده دو سه سال یا بیشتر سال پنجه و شیشه هجری بنامبر نقلی که سال 58 باشه یا 59 باشه این خطبه یک سال قبل است فوت آوی هزد دارن کلماتی دارن میگن و دارن جامعه شناسی میکنن که عجیبه من میکنم میکنن گاهن بعضی از سخنران من گوش میدم که بله آقا ابو عبدالله مثلا رفتن که حکومت کنن حضرت لیشه های حکومت اینا رو فاسد میدونه از اصابه رو ظالم میدونه گروه ها رو متشتت میدونه قطعا شما بدانید کوفه زمان آقا ابو عبدالله به مراتب زعیفتر و پیمان شکنتر از کوف زمان امیر و زمان امام مشتبه برای سلام بود یه وقتی, یه وقتی من خطبه رو مرومی کردم احساس میکردم حضرت دارن توی این خطبه اطمام حجت میکنند همه چی رو کامل و واضح کردن برای همه یعنی واقعا همتی که شما فرمودید اگر ما اقنامات با عبدالله زمان برادرشون رو که سکوت کردن به احترام سال حضرت زمان بعد از شهادت آقای ما مشتبه ده سالی که ازرد با معاویه بودن گفتگوهایی که بین ازت و معاویه بوده نامه که رد و بدل می شوده صحبت هایی که ازرد داشتند اطمام حجتی که می گردن یارگیری که می کردن. یک شبه یاران خالص در آشورا و کربلا جمع نشدن این نتیجه تبلیغات و تربیت ازرد و استمرار به حساب تربیتی ازرد بوده تصد دقیقا نخشا رو مشخص در فقره اول علما رو مخاطب قرار دادن با هیچ کزا مماشات ندارم. علما، احبار، ربانیون اونا که شما علمای ربانی هستید بدونید علمای بنی اسرائیل وظیفه را انجام ندادند. به خاطر رقبت و رحبت از آدم ها و قدرت ها سکوت کردند. و در مقابل بدعت و تدلیس و کتمان حق سکوت کردند شما علما اگر سکوت کنید شما اگر علما مردم رو فراموش کنید بدعت در دین بیاد به خاطر اینکه بگیم کتک میخوریم بگیم اون رو دیگه نمیبرن بگیم دیگه اطلاعی همون رو نمیخونن بگیم چی چی چی بدونید شما نقطه آقازین انحراف رو شما شروع کردی و شما خداوند حسن فنا نداره سو اصنا داره بدگوییتون رو خدا کرد بدکاری کردی و اصابه رو گروه داره پس گروه اول حضرت علما ربانیون و احبار رو مخاطب قرار میدن و که که دارند و تحلیل اینکه چرا سکوت میکنن گروه دوم رو اصابه اصابه چه کسانی هستند جریانات قدرت های متره تأثیر گذار هر جامعه درسته. خوب یا بد درسته. این اصابه که باید در حقیقت حق مدار باشن حق طلب باشن جریان سیاسی خودشون رو جناه سیاسی خودشون رو جریان فکری خودشون رو هماحگ کنم بر حق خواهی، دفاع از مظلوم، دفاع از حق برای ایجاد عدالت که در اساس اون دفاع از اهل بیت هست شونا اونا مهور هستند محور دین هستند اساس دین هستند اساس وحدت جامعه هستند احساس کمال خواهی دین هستند حساب رو مشخص میکنن. این سوال باقی مونده که حالا در بیشتر اسال بکیاه هستن چه خصوصیت هایی دارند و چه گونه بعد بعد وظایفی داشته باشید و کوتاهی می‌کنند. ریم دل روز است از شجری توبا سیمایش چون پاره ماه و معرفتش چون اویانوسی بیکران نامش قاسم است قاسم ابن الحسن رهی و سلام او که مرگ در کامش شیرینتر از اصل است او که آرزویش شهادت در دردکاب امامش است و یاد آور هنگامی را که او نزد امام میآید و اجازه میدان میگیرد او از امام خود شنیده است که از شهیدان کربلا خواهد بود و گفته است که مرگ برایش از اصل شیرین شیرینتر است امام دست در گردن او میاندازد او را در بر میگیرد و هر دو چنان گریه می کنند که حالشان دگرگون می شود. نوجوان هرچه چه رخصت میدان می طلبد اما مزایقه می کند. دست امو را می بوزد و التماس می کند تا امام خود را راضی می کند. دیو خنجر بلای من کن پدری مثل علی اکبر آه این کلاه و این زره بر تن او نمی آید چه کنه حمید ابن مسلم راوی کربلا میگوید من در میان لشکر عمر سعد بودم پسری دیدم که به میدان آمد. گویا صورتش پاری ماه بود. پیراهنی در برداشت و نعلینی در پا. یادم نمی رود که بند یکی از دو کفشش رسیخته بود. او چنان کارزاری کرد که بیش از سی نفر را هلاک کرد تا آنکه جماعتی او را احاطه کردند. ناگهان ابن سعد از گفت به خدا سوگند من به این پسر حمله میکنم و او را به قتل میرسانم گفتم این جماعت برای قتل او کافی است چرا تو خود را در خون او شریک میکنی گفت سخن همان است که گفتم و حرکت کرد و با او درگیر شد و شمشیری بر فرق مظلوم زد او با صورت به زمین افتاد و فریاد برداشت یا اما سیزده سال جوانی محجبین ماه پرمین از جمالش خوش چین یک نوجوانی که لم یبلوغ الخلوم هنوز به حد بلوغ و تکلیف نرسیده بوده روی یادآور روی حسن خوی او چون خوی حسن در شب آشورا وقتی که امام حسین علیه السلام گفتن که این حادث اتفاق خواهد رو داد در همه کشته خواهم شد گفتن که شما بروید به اصحاب قبول نکردن که برون این نوجوان از که اموجان آیا من هم به شهادت خواهم رسید در این میدان فرمود عزیزم بگوی مرگ برای تو چجوری ازا اول که احلا تو خدا قسمه از هر شیرین تره چقدرین جوان در هنجر تشنه صدای آشنا دارد صدای سولت حیدر صدای اسمت مادر صدای قربت بابای خود در کربلا دارد بوز آشورا که شد این نوجوان آمد خوش عمو، قالر راوی و خرج غلامون که همطور که نگاه می کردیم ناگهان دیدیم از طرف قیمه های عبی عبدالله، یک پسر نوجوانی آمد بیرون خرج غلامون که ان نجه او شت و کمر، چهرهاش پاره ماه میدرخشید زیبا چه روی چه روی با اجازه رفتن میدم آقا بغل باز کرد بغان Direktor آغوش خود چشونه فزر رو یادبر برادر, برادر وقتی آماده شده برای میدان رفتن قاسم رو بغل کرد و جعلا یبکیان حتی قوشی ما جعلا یبکیان علیه قوشی علیه ما یعنی یک هر دو بیهوش شدن تا وقتی بهوش آمدن قاسم اجازه خواهد اجازه ندارد اینقدر دستای امور و بوسید دید فایده خدش روی پاهای امور و بوسی ازتماس کرد واقعا چه دارد ازازه دارد معلوم بشینی دیگه با همون لباس عادی هم رفته چون لباس رزمان مردهاست نه کلاخودی داره نه زرهی داره. نه چکمهی دارد به همون لباس عادی رفته ولین اکبر که جوشن داشت آن شد تو که جوشن نداری ففربهو ابن فوزایدون العزدی علا رأسه ففتلق از اونه فرق این جوان را شکافت فوق القلامل وجهه پسرک با صورت روی زمین افتاد و ساحه یا اما فریادش بلند شد که امون جان برا سخت صداش بزنی و جوابت آمده هاویو جیبو کفلا ینفو چه از سوتون یا شاید جواب تو بده اما فایده باشه چون نیمت حسن مود نیمت حسین چرا اینقدر شکل زهرا شد چنان از سر از انداختن چنان از سر اصف انداختن که از نصف های کمر تا شدید قسمم قسمم برای ایت الحسین علیه السلام میگه من نگاه کردم حسین علی علیه السلام رو انجا دیدم قای منقلا رأس الغلام بالای سر این نوجوانی استادت امام حسین داره نگاه میکنه با حسرت به او و هبیت حساب رجلی اون نوجوان هم با پاهاش داره زنین رو میشه کافه رو در حال جان دادنه و داره رو تکان میده بل علیه السلام یه بعدا بعدن لقوم قتلوش دور باشند از رحمت خدا اون کسانی که تو رو به قتل سندن اصل خوردم دست پاچ شکر حق که شدم سین چاک امون امو جان ببین حال روز مرا دین مقتل شده قامتم زیر پاب مثل برگ خزانم نمانده توانم به خاک و به خون سید گشت نهانم تستیت و تذیت به مناسبت این ایام سوگواری برای حضرت تعبابل لالو سندنی سلام و یاران و صحابی باوفاشون خب در ادامه برنامه باز هم برسیم به خطبه منا و ساخران عوجت و و مسلمین استاد داجوالی که در گروه اصابه قرار بود صحبت کن آیل داجوالی داخل مجموعه خواهشون کنم صحبت این بود که مقصود از اصابه کسانی هستن منه حضرت میفرمایند شما تو حال اسابه یک گروهی که خودتون رو توانمند و شاخص میدونید گذار میدونید حالا اسابتون بل مشوره شما یا کسانی هستید که به دانشمندی و فریختگی مشهور شدید یا بل مذکوره حضرت نمیگه شما اهل خیرید میگه شما به خیر مذکورید اهل خیر میدوننتون درسته و به نصیحه نصیحت معروفه شما خیرخواه میدونن تو جامعه اینجور مطرح شدید شما اهل علم میدونن اهل خیر میدونن اهل نصیحت و خیرخواهی میدونن و بالله فی انفس الناس محابتن شما تو مردم به خاطر اعتباری که خدا بهتون داده یک ابوهتی دارید بله که یا ها شریف و شریف و ضعیف، هم افراد شریف از شما هیبت میبره میپذیره جلو میشه حرفتون رو قبول میکنه نامتون رو میپذیر پیبت بهش میگن باده. و هم ضعیف شما رو اکرام میکنه این یک اعتبار تاثیر گذاری اجتماعی تو مردم پیدا کردید و من لا فضل علیه حتی اون کسایی که از جد فض با شما مساویه هستن شما رو مقدم می‌دارن ببینید بعضی هستن تو جامعه اعتبار خاصی رو تو جامعه پیدا میکنن بله معرفی اینها مردم قبول می‌کنن بین این آقا به آقایی مثل خود او سفر بگیرید دو تو پزشک داریم دو متخصص قلب داریم این آقا و اون آقاش ها در تخصص خیلی باید که فرقی فرق اصلا نداشته باشه. اما به هر علتی یکی از اینها مرجع شده. گفتش، کلامش، تشخیصش، نقل قولش، همه چیزش تو مردم اثر میذاره. همین مقدار برای این شخص یک وظیفه ایجاد میکنه. وظیفه تأثیر گذاری. بله. خب کسی جایگاه و نقشی رو پیدا کرد. هنچین تأثیر گزایی رو پیدا کرد که شما این اصحاب این گروه هستید به صورتی که اونهایی که هوایج دارند وقتی که بهشون شون ظلم شما رو شفیق قرار میدن آقا فلا ما ظلم کرده گروه ما ظلم کرده کدوم جریان به ما ظلم کرده کدوم رئیس قبیله به ما ظلم کرده حق ما رو کرده ناموس ما رو ملتجاوز قید شما رو شفیق قرار میدن بله وقتی که تو مردم حرکت کنی و تمشون فتطریق به حیبت الملوک شما به یه حدی رسیدید یه ملوک ما داریم یه توده مردم داریم یه وسط داریم بله وسط هرم شما وقتی که شما شبیه ملوک حرکت میکنی هشم و اسب و ماشین و چی و زده گلوله و برو و بیار و اینها رو داری و کرامت ال شما توقع کرامت اکابر رو دارید مثل بزرگان شما رو باقی با خب من احانت شد من رفتم تو مجلس جلو پان بلند نشدن پس شما یه نقشی آقای نعصابه تو جامعه پیدا کردی. به این عناوین مشفور شدی، این گونه تأثیر گذاری رو دارید این گونه از خودتون شخصیت نشون میدید علیسه کلو ذالک انما نلتمو به ما یرجا اندکو من القیام به حق الله آیا تمام ای موقعیت که تو جامعه اسلامی پیدا کردید من این تعابی رو دارم از مطمی خودم هیچ تطفیقم فعلا نمیدم آیا تمام ای موقعیت که پیدا کردید معروف شدید به جریان مثلا فرض بگیرید متدینی معروف شدید به جریان نمیدونم زندان رفته‌ها معروف شدید به جریان نمیدونم جپ رفته‌ها معروف شدید به جریان دفاع از رهبری معروف شدید به جنا دفاع از چی چی چی چی خیلی هم خوبه کسانی که بهایی رو پرداختن بعد بح... رو پرداخت کردن و موقعیت رو پیدا کردن و تأثیر گذار بود آیا همه این موقعیت‌ها به خاطری که حق خدا رو و قیام کنید به حق الله ما نرفتیم زندان زمان شاه تو تونش رو الان از مردم بگیریم نرفتیم شلاق بخوریم الان تلاشو بگیریم که رفتیم ادالت پیاده بیشه دیگه بله. زمان رسول الله شما صحابی رسول الله بودید، تابعین بودید، بزرگان بودید، علم و یاد گرفتید، در این جریان سیاسی شدید، جریان اجتماعی شدید، جریان روحانی شدید، چی چین جریانات که الان همه داریم و همش هم منشأ بدکته و بسیارم خوب هست. یک نکته رو بدانید و بدانیم که همه اینها برای ایجاد شده که حق رو به پا بداریم، نه خودمون رو پا به استین فقط. بله، نظر می انما نلتمو به ما یور جا اندکو منرقیان به حق الله اما آیا شما وضعیت جامعه ما به این صورت شده که فساد شیوع پیدا کرده معاوی جریان نفاق حاکم شده خودشو جلودار اسلام میداند، اسلام عموی داره جای اسلام علوی رو پر میکند، کتاب تحریف میشود، شود روایات جعل میشود. انسان های خوب زندان می شود آیا این حقوقی رو که در بر اساس دین حقی رو که به خاطر به پا حدود الهی است، آیا شما ادا کردید یا نه یا کوتاه کوتاه آوردید کوتاه کردید من به خدمتتون عرض بکنم اگر تو جامعه فساد زیاد میشه من روحانی اول بگم کجا من کوتاهی کردم من طلبه شما یه مجری منه. شما مسئول نمونم صدا و سیمای قوم صدا شما مسئول آموزه نگیم دیگری اگر گفتیم دیگری هیچ موقع بعضمون درست نخواهد شد ارتفاع وجودی پیدا نخواهد اول خودمون رو او انفسکم یک حاسب بو اینا او دوتا کنار هم نیگه در قرآن منه. هم خودتون رو حفظ کنید هم خودتون رو محاسبه کنید اول بگید چه کار باید خدا رحمت کنه حضرتید بگذارید کلمات واقعاً کلید حل مشکلات همه زمان ما منه. نگید انقلاب برای شما چه کرده شما برای انقلاب چه کردید انقلاب یک نهادی که ایجاد شده برای اینکه روش کنه از هم استفاده کنه قرار نیست که ریشش بریم آتش بزنیم بیایم چراغمون و داغ کنیم که ریش سوزی کنیم تا من زندگیم داغ بشه نه حفظ ریش ها باید بکنیم از سمراتشون هم عموم استفاده بهره خواص اینی که عموم تمتع تو ببرن بهره عموم نیست که خواست تمتع تو ببرن این جه باید عوض بشه اول امکانات برای این علوی یعنی این خواص نباید اول متمتع باشن خونه هاشون فرق کنه ماشین فرق کنه حقوقشون فرق کنه چون میخوایم نظام حفظ بشه عوام اول باید متعمد این علی یاد ما داد یا امیرالمؤمنین رو میگیم قبول نداریم عدالت عمر رو قبول داریم نه عدالت علی علی قنبر رو لباس نور رو داد اول فرمودن ما به اندازه از اف مردم زندگی میکنم و باید بکنیم تا ضعیف تو جامعه احساس تنهایی نکنه درسته احساس به حساب بی کسی نکنه بگه علی هم مثل منه این یک چیلیده خب حساب می و این کنتم ان اکثر حق. پس ببینید من بحثم طولانی نشه خواصی داریم اصابه ای داریم گروه های برجسته اجتماعی دارن. داریم اینا تاثیر گذارن به علم مشهورن یا ایک فریخته هستن یا شخصیست فرهنگی پول نداره اما جدی فرهنگ که اصیگدار زبانش تأثیر گذاره علمش تأثیر گذاره هنرش تأثیر گذاره حتی عظمخاملو بد نیست شما مطرح کنم ممکنه یه جوانی فرض بگیره تو مجموعه ورزشی خودش بشه بشه, بشه پور پوری ولی تأثیر گذار اجتماعی قوی و غنی داشته باشه یه جوانی مثلا ممکنه بشه مظهر فرهنگ غرب جامعه رو به لجن بکشه یک هنرپیشه فز بگیرین بل علم مشهور بل هنر مشهور شهرت هنری پیدا میکن. چشما به او جلب می دخترهای هیچ دیده ساله لباسشون رو نمونم زندگیشون رو از او می این مسئولیت پیدا میکنه به مقدار تأثیرگذاری که داده به بهمون داده شده و هر علتی به هر کسی یه جور تأثیرگذاری داده شده کسی چشم ابروش کسی نوم هکرش کسی قوت بازوش یکی علمش یکی پولش یکی خیرخواهیش شده اصابه شده یک جمع تاثیرگذار و یه تشکل تأثیرگذار اجتماعی تمام این تاثیرگذاران اجتماعی در نظام اسلامی وظیفه دارن یک حق رو به پا بدارن دو واسطه خیر بشن سه محورها رو حفظ کنن درسته همه این موقعیت ها و این شهرت ها و این مخنت ها رو هم از همون دین و همون دادخواهی با... که برای دین داشتن و همون انقلاب و اینها دارن دینه جامعه دینی همینه دیگه از دین که دفته ما جامعه غیر دینی این رو کی... دقیقی به شما گرفتید ببینید جامعه دینی چون دین براش مهمه میبینه فلانی جبه رفته براش برایش درسته. من الگوم از اون میگیرم اون میشه محب اگر خدایی نکرده جبه رفته های ما اومدن تو تجارت بره. اومدنشون تو تجارت مشکل نه نه, نه اون بس تجارت کزایی تجارت تجارتش کار نداشت ما خوندم تو تجارت بدیم ان شاءالله غیر چهاراگر ندیم بعد بریم شهری شهریا که نمیشه زندگی کرد اشکالی نداره آقای امام سجاد علیه السلام چی داشتن کرایه میدادن بله گروه های کرایه داشتن بین مدین و مکه کسب میکردن کسب حلال میکردن خیلی هم خوب و ارزشمنده اما رفتیم برای خودمون فرصت ویژه قائل شدیم من به اعتبار هفتاد دو ج پ بودم شش ما تو ج پ بودم چهار ما تو ج پ بودم پس این فرصت رو میخوام من اینو نمیدونم شاید برای منم درست هم نباشه چون این عزیزترین کسسان ما هستن چون عزیطرران من وظیفه خودم میدونم خطرات رو من گاهی خیلی اذیت میشم بعضی فیلمایی می بینم که مثلا نشون میده چهره ای که مثلا فرض بودم فراری دو بود چی بود خروجی دو بود خراجی دو بود؟ سه بود چی بود نشون میده جریانی که مثلا از تو ج په توی شرایط اجتماعی نتونست خودش رو حفظکنه درست اوان این خطه قالب جامعه ایمانی تنو زم جامعه ما تو همه جا که هفته از بچه‌هایی که چهپه‌ رفتن بله. و دنیا رو کندن و آخرت رو دلشون بزرگ شده و بزرگتر از دنیا ما بله. داریم الان همون هایی که ما داره ساخته میشه راهایی که ما ساخته میشه امنیتی که داریم از اون کسانی است که دل به خدا سپردن و دل به محبوب خودشون سپردن و اونا هستن و نشونم ندارن نشون نمیدن بلد. حالا منی که حالا رفتم آمدم هممون هم باید بدونیم من روحانی طلبه بدانم و همه عزیزان بدونیم ما باید زعفای غم رو حفظ کنیم ما باید الگوه الگوی فرهنگی و الگوی بخشش و رحمت باشیم یادم همین الانی که خدمت شما بودم شما این مطلبی رو فرمودید حالا بنا شده دارم سوال کنید نکردید خودم مدرسه میکنم ببینید شما فرمودید که بهترین نوع و اولاترین امر معروف به چه صورت قولی فعلی اخم، تخم بگیم من خدمتتون ن کردم حکیم اونه که تو جایگاهی که قرار میگیره متناسب با اون جایگاه صحبت بعضی وقت سکوت خودش بیشترین فریاد درسته من مثال زدم بچه که رفته لباس نوع ایدی دی رو پاره کرده میاد تو خونه مامانم اقدر زحمت کشیده بابام رفتن قدر ای رو جمع کرده برای کوچروار خریده این رفته تو خاک زده اومددی درست میاد گاهی میاد کردم که کردم چ میگی این مستقت کتک حالا من روان شناسایی راند یه مق میاد سرش پایین انداخته خودش شرمهرت دیگه م. حالا دیگه اونجا کلاس علمی بزاده ببینید فرزندم ببین پسرم ببین حالا بچه دق میکنه و خودش فهمیده چه کار کنه ما هم فهمو میخاییم نمیخوایم ببینید گاهی حالا من اینجا مثلا میکنم گاهی بزرگان ما م... که بعد گذار باشن نه از کلاس بزرگی تأثیرش خدا رحمت کنه استاد میفهمن تو کلاس شاگردی استادی کنی تو کلاس شاگردین از زبان شاگردی یاد بدید به استادها و افراد از زبان محبت با خلخف بزنید از زبان جایگاه تأثیر گذاره. شما اگر شدید یه دانشمند یه نمیدونم شخصیت تأثیر گذاره یه جریان گذار بالنده شدید بدونید تأثیر گذاریتون مجموعش خروجیش و دفاع از حق درسته شاخصهای حق زعفا باش شما خدا بهتون اعتبار داده جریان سیاسی جریان برنده نمیدونم انتخابا جریان برندهی نمیدونم چه ج... جریان سیاسی و اجتماعی اقتصادی تو هر جا شما نوبت بهت رسیده تا این فرصت رو استفاده کنی ها رو پر کنی اون چیزهایی که میگفتی خوبه عملیاتی کنی هر میگن نگن اصابه. شما گروه های خود رتمند. بدونید به چیام معروف شدید بین چه کسانی معروف شدی؟ بله. به خاطر چی معروف شدی؟ و وظیفتون چیه؟ با کاروان کربلا بسم الله الرحمن الرحیم در ششم محرم الحرام رفته رفته سپاه عمر سعد در کربلا تکمین شد تا همون حدود سی هزار نفر که از روایات استفاده میشه اقدامی رو در این روز از روایات مقتل استفاده میشه که حبیب ابن مظاهر اسدی انجام داده او وقتی که انبوهی سپاه مقابل رو مشاهده کرد و اندکی سپاه عبدالله علیه السلام رو به حضرت پیشنهاد کرد که در این نزدیکی گروهی از طایفه و قبیله بنی اسد زندگی می اگر اگر دهید من چون خود او از قبیله بنی اسد بود برم و اونها رو راغب بکنم برای ملحق شدن به سپاه شما امام حسین علیه السلام به او اجازه دادن و حبیب ابن مظاهر رفت و برای اونها صحبت کرد حق امام حسین علیه جایگاه امام حسین عظمت مقام اون حضرت و حقوق اون حضرت رو یادآور شد و وضعیت بن اومیه و بطلان خلافت یزید رو مطرح کرد و گفته شده از میان آنها قریب به هفتاد نفر آماده شدند همراه حبیب ابن مظاهر به کربلا بیان و به یاری امام حسین علیه السلام اما همین حرکت حبیب ابن مظاهر به گوش عمر سعد رسید و سفاهیان مقابل و او کسی را معمور کرد از فرماندهان خودش که همراه نیروهایی برند و حائل بشند بین بنی اسد و بین سفاه امام حسین علیه السلام و متاسفانه همینطور شد نیروهای عمر سعد، موفق شدند حائل بشند بین اون جمع از تایفه بنی اسد و بین سپاه امام حسین علیه السلام و لذا حبیب ببنی مظاهر موفق شد خودش رو به نحوی ملحق بکند به سپاه امام حسین و این نیروها که می توانستند بر حال بیان ملحق بشن به سپاه ازد و کمک کار امام حسین علیه السلام بشن موفق به این کار نشدند خانان حجاتورستان و والمسلمین دکتر محمد رزا جباری در این بخش تقدیمتون شد هجرتستان و مستمین اوستان داجه بعدی درباره خطبه منا و دو بخشی که در این خطبه درباره اسابه بیشتر راجع به صحبت خواهیم کرد بله خدمت بله همینطوری که خدمتتون عرض کردم بیانی که ازت دارن اصابه رو ملزم میکنن که این موقعیتی که شما به دست آوردید در جامعه باید مصرف کنید برای به پا حق و حقوق حق درست و بپاداشتن حقوق اما متاسفانه شما کار انجام ندادید و علامتش هم اینه که ما این تشتتی که در جامعه دینی اون زمان میبینیم فسادی که میبینیم حاکم شده و فساق حکومت رو گرفتن علمای فاسد قضاوت رو گرفتن آدم های بیریشه مطرح شدن که شما به حق خودتون قانع نبودید و حق رو با موقعیتون تثبیت نکردید خودتون تثبیت کردید دقت کنید ما گاهی از دین استفاده میکنیم تا خودمون رو تثبیت کنیم بله گاهی نه از خودمون استفاده می‌کنیم تا دین رو تثبیت کنیم درسته دومی‌ها صادقن اون‌ها وارثن با تمام وجود مایه می‌ذاریم برای اینکه. آره که موقعیت خودمون رو خرجه از کنم خدا میکنیم خرجی ارزش ها میکنیم اینجاست که دینداریمون معلوم میشه آقا تحلیلی که دارن بیانشون اینه که کل زالک انما نلتمو به ما یرجا اینده من القیام به حق الله امیدی که شما از این موقعیتون حق و حقوق رو به پا بدارین قائم کنین یادم نمیاد که کدام یکی از علما بودند ولی در لحظه آخر عمرشون خیلی ناراحت بودند و پرسیدن چرا گفتند که یک جا از آبروم میتونستم مایه بگذارم بگذرم رو نگذاشتم بله حالا نمیدونم کدام بله از علمای از کنان شما عراق بودند از شیعیان بزرگ تاجر میگنم تاجر گریه کرد گفتند چرا گریه میکنی گفت ایشون گفت اگر من رسول الله منو بپرسه که چرا میتونست زامن فلان شخص بشی نشدی من چی جواب بدم دارست. اون از اعتبارش پیش رسول الله و من از پولم پیش خدا مسئول نیستم دارست. اون اعتبارشو اونجا که لازم بوده میگه شاید اگه خرج میکردم اونها گرفتار نمیشدن خب امیدی که از این حساب هست گروه های تاثیرگذار اجتماعی سیاسی در یه مع جامعه... مستتر برای حسابه میذاریم که جریانات جریان خوشم فرموود حوا صحبت خودتون یا جریانات تاثیر گذار بله اگه ب... با ادبیات سیاسی امروز صحبت کنیم حالا من میخوام بگم چی اسم ببرم اونرا که تاأثیر گذار سیاسی اجتماعی است به تعویر شما نوشید مردم نیروند بله تواندار که میتونه تحصیل هستن حضرت میفرماید شما باید حقوق رو به پا میداشتید مهمترین حقوق که باید به پا داشته میشد و نشد و مفاسد از اونجا شروع شد حق اعمه است تعبیر بله. حضرت خیلی زیباست حضرت میفرماید اولین حقی رو که شما از من بردید قنکنتم ان اکثر حقی تقصرون از اون حق زیادی که شما خیلی کوتاهی کردید فاستغفرتم به حق الائمه شما حق ائمه رو کوچک کردید این نکته بسیار نتیفه. شما دقت کنید از زیارت عاشورا این سوال رو کاملا جواب میشه چی میشه به کشتن می حسین رضایت میدن علیه السلام اول میان مراتب رو کم میکنن بله مقامات رو کم میکنن خدا لعنت کنون کسایی که مقامات شما حقایق شما رو ببینید وقتی که میان میگن آقا چه فرقی بین ولایت امیرالمومنین و با... اصلا ولایت یعنی چطور ولایت دینی بگیر انسان ولی میخواد مگه انسان بچه است که پدر بخواد دستش رو بگیره مف... مفهوم ولایت معصومی رو پایین میارن نفهمیدن اصلا بدتره بچه‌ها بله گاهنم خوب فهمیدن میدونن این مفهوم ولایت اگر تو جا بیفته ما ببینیم ولایت ولایت خدایی است بر انسان همونطور که انما ولی الله ولی یعنی سرپرست ولی کسی است که آگاه هست، عالم است داناست، عادل است دست خداست رحمت و رحمت واسعهی خدا بر خلق است پوشش باران رحمت خدا بر سرزمین دل انسان هست نمیان بگم که خب ولایتی یعنی چی ولایتی که آقا مثلا شرط دست بچه رو بگیره ببره نه ولایت سرپرستی است عهدهداری مدیریت کردن انسان برای رسیدن مقامات والا کسی که از خدا گرفته است تا خلق خدا رو به خدا برساند درست میان ولایت رو پایین میارن ائمه رو پایین میارد, میارد. مقامشون رو پایین میارد ذکر اونا ذکر خدا. تذكروا اسماء الله اسماء نحن قسم یاد نحن الله نحن اسماء الحسنى نحن اسماء الله اسماء خدا ائمه معصومین هستن اسماء الحسنا اینا هستن کلمات الله اینا هستن اگر عیسی علیه السلام کلمه خداست آقا ابو عبدالله واقا امام زمان الله هستند کلمه خدا هستند روح خدا هستن. حالا معناش چیه جای بحثه ما خیلی چیزا دنیا نمیدونیم بعدون از اهلش بپرسیم خب هستت میفرماید بزرگترین حقی رو که شما زایع کردید استخفاف الاعیمه است نمیگه ظلمه کوچیک کردید اعیمه رو از اون حالت بالا آوردید نشان دید از خودتونم مساویه خودتون و خودتونم پایینتر ببینید جریان نفاق دو کار انجام داد رسول الله و ائمه رو از بالا آورد پایین پایینا برد بالا تا مساوی بشن تا حکومت تا خلیفه علی که خلیفه است با معاویه خزن مردم این چه،, این چه تفاوتی علی در عرش خلیفتullah است معاویه در زیر فرش خلیفتullah در مقایسه خود مردم به این امکان نداره پس علی رو باید برام پایین چرا علی میگفتن نماز نمیخونه چرا نعوذ بالله سب امیرالمومنین رو به یک فرهنگ عمومی در جامعه دینی شیو دادند از یه طرف به ابو حرید پولها داد که در فضائل دروغین معاویه که هنوز کتاب متاسفانه وحابیوم و بعدی از جریانات انحرافی به نام مسلمانان هست معاویه رای کمالاتی باش شما که تو هیچ کجا پیدا نمیشه همه. تا بتونن اینها رو در تراز قرار بدن جامعه بپذیر معاویه رو و جریان نفاق رو به عنوان خلیفت به عنوان امر آیونه امروزی عربستان پادشاه شما علل بر است چرا؟ مالک ناموس و مال و اموالتون علل امره اطاعت هم قرآن گفته واجبه رو چه حسابی؟ رو چه میزانی؟ رو چه تحلیل قرآنی؟ از کجا آمدن؟ چون پدر پسرشه چون پسر اموی پادشاه قبله ولایت داره ولایت به این بیریشه ای بی اساسی اصلا قابل تر نیست تا ما بخوایم به عنوان بحث علمی بده شیعه میگه ولایت برخواسته از شرایط است، برخواسته از معرفت و دیانت و ارتباط با حق است کسی ولی گست که همتراز نبی گست و نبی از خدا میگیرد ما همچین ولایتی رو قائلیم ولی میگیم هیچ کسی بر انسان ولایتی ندارد فستخفستم به حق الائمه استخفاف حق اگر ما بیام شب و روز سینه بزنیم اما امه در چشم ما کچک باشه استخفاف به حق حسین داریم امید. اول تو این جریاناتی که داریم و این برامه که داریم و این مراسمی که واقعا مردم زحمت میکشند اگر نتیجه شعور و از کنم شعار و بیان و مراسم آینی ما نشون دادن مقام ائمه هست حتی در شعر حتی در موسیقی ها. من اعتقادم اینه که حتی تو مراسم آقا ابا عبدالله متناسب با اون وقایع، ما حتی برای علی اکبر باید بتونیم حتی موسیقی حوض آلوده که مقام حضرت رو مشخص کنه داشته باشیم هر چیزی رو در جایگاه خود در جایگاه خودش, خودش. یعنی مقام علی اکبر رو مقام الهی این معصومیز رو آقا امام زمان رو کاملا علمای ما بزرگان و ما در کنند، تبیین کنند، با احساس عجین کنند، با برهان و با منطق بیان کنند، ما دین منطق هستیم، اما فستخفتم به حق ائمه. هم حق ائمه رو کوچک کردی، و هم حق مردم رو ضایع کردید دو عنوان رو انشالله فردا ادامه میدیم. استخفاف حق ائمه و از بین بر حق ظعفا. این دو رو جامعه رو از بمیبره، زعفا عموم مردم هستن که حقشون زایع شد، این اصابه قیام نکرد برای استحقاق حق اونها و حق ائمه به عنوان رهبران دینی، به عنوان شاخص، به عنوان چراغ راه استخفاف شد، پایین آورد. این دو جریان خطرناک. خیلی ممنون و متشکرم آقای لاجوهردی ازتون حالا توی بخشی که از اتا فرمان فرصت خواهیم گرفت باستم داخل منتون خواهیم بود برای معرفی اون کتابی که قولش را دادیم به شنوندگان هرزمن حبیبی حسین حبیبی حسین نور العویونی حسین چه خوش است رنج و مهنت به ره وفا کشیدن چه خوش است رنج و مهنت به ره وفا کشیدن چه خوش است ناز جانان همه را به جان خریدن چه خوش است جان سپاری به قدوم چون تو یاری چه خوش است از تو فرمان و زمن به سردویدن چو قزال مشتبا شد زمیان خیم بیرون به شتاب از پیامد شهدین برای دیدن چه امو، چه نوجوانی چه گلی، چه باغبانی به حسن خبر ده که چه جای آرمیدن به شکافت کوفیان را سف و زد به قلب لشکر چه خوش است از غزالی همه گرگ ها رمیدن به جواب اهل کوفه به زبان حال میگفت: گفت چه خوش است ناسزاها به ره خدا شنیدن سند آتشم حسانا قم شاهزاد قاسم به نگر به دست گلچین گل نو شکفت چیدنی <تصفح> راحت می نمو یار جون فجای میانه سنگ باران سر شکسته صداयत می زنم شادت میای گچیمه سید ده سال در اینجا شده مقتول بغض موج توای شوده موسوی بوزه موج تبایی رجز خالدم ولی باشور آب باز راجز خالدم ولی باشور آب باز آن ابن الموج تبای مرتزای آن ابن الموج تبای مرتزای عدو سرخواست سر می دهم کریمانه برو کردم عطایی به زیر سم مرکب ها امو زیارت نام می خوانم کجایی برای دیدنم زهرا رسیده برای گیریدنم زهران سییده هم جانا آمده وقته جدای هم جانا آمد تمام استخواان های هم شکسته تمام است و خانهایم شکسته. با نده ح ایران اینجا جایی خوندش ایران تو را اینجا جایط را چون معلی اکبر برای خ بود تمام را چون علی یه عگ برای خ بهخواانوان لا ب لایه یک اوای به خوبانخوالا بریم به سراغ معرفی کتاب از زبان استاد راجبهدی راجبهدی. خواهش می‌کنم کتابی که به نظر من رسید با به نسل پاسخگر و جستجوگری که داریم لازم است کتابی تحلیلی رو به شما معرفی کنیم. یکی از کتابایی که از کنم بسیار دقیق به تحلیل جریان حرکت آقای ابو عبدالله پرداخته و یه خصیت خاصی هم که تو کتاب هست از زبان گذشته از تاریخ نگری و اصحاب تاریخ به روایات هم توجه داره از روایات هم استفاده کرده که به سوالات پاسخ بده از کنم کتاب تاریخ سید و شهده کتاب تاریخ سید و شهده قریفه آیت الله صفایی خائری که توسط انتشارات محسد مقدس جمع زحمت کشیدن مستند کردن، تجدید جواب کردن کتاب 4 با ارزشیت و فصولی که در این کتاب مطرح شده مثل همه ها در مورد اما خصتی که شماید در مورد معاویه هم صحبت شده، شرایط تاریخی اون زمان تحلیل شده، در مورد ولایت صحبت شده، چرا امام باید معصوم باشه، مقدار صحبت های مقدماتی اجزای مبانی فکری و دینی مطرح شده و وارد تاریخ شدن و از زمان حرکت آقا ابو عبدالله از مدینه به پرداخته تا شهادت و آخرم به قیام مختار یه نظریم به قیام مختار و اما اینکه آیا قیام مختار مورد تایید ائمه بوده یا نه و اینکه چرا بعضی از روایات در مذمت حرکت مختار اماده ایشون تحلیل بسیار خوبی دارن عزیزانی که میخوان استفاده کنن ادبیات بسیار روان و ساده است فارسی هست و کتاب جمع و جور و مناسبی است برای آشنا شدن تحلیلی حرکت آقا با عبدالله امیدوارم که مورد استفاده عزیزان قرار بگیره ان کتاب تاریخ سیلوشادن سلام از انتشارات مسجد مقدس جمع. جمع. خیلی ممنونم ایلا جوادی لطفی التماس دارم به همین عزیزان بایش. السلام علیکم و رحمت الله خدا نگه دارتون باشه و تعذیت به همه شما بزرگ بران از قصد شد چشم دلم لب خون دمناک خاک این زمین دلگیر رنگ ذکر لبایتو شده این نائلت نا علی راج اون آتش دلم ببین آتش دلم ببین ناله حرم ببین دارم بلد نبایی بلد نبایی آه هست کم جدایی کم جدایی دارم بلاب نبايی بلاب نبايی بلاب نبايی آه هست جدایی هر گوشه کربلا دریاست کرب و خاک پر درد بور بچش لب چشمه خونه شماست ماه غم محرم قاهبم محرم خوشلم فقط دمه خوشلم فقط دمه قلبم قروم نداره قروم نداره قروم نداره هر دم چه شام, میباره، چه شام میباره چه شام میباره؟ چرا گریه کنی ز اینجا که دی یکزمون بارون ششه در اینجا که دی یکزمون بارون اش در روزی میاد که میبینه توفن آه مادر درو میذاره روی قلب من داقه و برادر و داقه خدایا خدایا آسمان دلم ابریست و چشمانم بارانی در این لحظه ها به سوی تو آمدم و تو را می خانم وقتی تو هستی همه چیز معنا می آبد این چه مصیبتی است که جانها را می و اشکها را روان می کند این چه احساس آسمانی است که با نام حسین در دلها می جوشد. همان آقایی که در اوج بندگی در سجاده عشق سر بر خاک و خون پاکش را در مناج و کربلا تقدیم اللهم چه قبول بشه ثوات و عبادات و راز و نیازهای شما شنوندگان گرامی به درگاه حضرت متعال. معلومه مرجعش تقدیمتون میشه در حالیکه ساعت نه دقیقه است. بریم درس دیگری رو از عاشورا بگیریم در سخنان حجت الاسلام و المسلمین استاد دهشوری. بسم الله الرحمن الرحیم صلی الله علیک یا ابا عبدالله ششمین درس از عاشورا توکل بر خدا انسان اگر از یک قدرت غیبی و منبع عظیم پشتیبانی نشه راه به جایی نمیبره امام حسین علیه این معنا رو به خوبی دریافته و به زیبایی عملیاتی و کاربردی کرده در جای جای از سخنانش نوشته هایی که ازشون بر جای مانده میبینیم که به توکل بر خدا اشاره میکنه آیه قرآن میخونه و ما توفیقی اللہ بله علیه توکل تو و علیه اننی توکلت تو علی الله ربی و ربکم این توکل رو فقط در لفظ نشون نمیده در عمل هم با میده این نکته رو دقت کنید محمد حنفی از روی دلسوزی به برادرش میگه برادرم اوضا خطرناکه شما در شهر خاصی نمانید امام علی السلام چی جواب میده به خدا قسم برادرم اگر در دنیا هیچ پناهگاهی نداشته باشم شما بدونید من با یزید ابن معاویه بیعت نمیکنم یعنی پناهگاه اصلی دارم به نام خدا، اگر دیگران در مکانی مرو راه ندادن، کمک نکردن، نگران نمیشم، این توکل در یاران او هم دیده میشه، زهیر ابن قین گفته شده که عثمانی بود و بعد حسینی شد، اما آنچنان محکم و استوار ایستاد با توکل بر خدا که گفت اگر چندین بار در رکاب شما کشته بشم و زنده بشم دست از شما بر نمیدارم، اینا از چی ناشه میشه؟ آیا جز از به خدا؟ سر تا سر کربلا توکل میبینید. توکل بر خدای متعال همون که امام حسین علیه السلام بارها بیان کرد و اصحابش آن را عملیاتی کردن. بر ما باد که از این درس نیز قافل نباشیم. توکل بر خدا در همه حال. لائلائی. لائلائی. من هم کلی لای لای سرالان لای لای لای لای لای لای لای لای لای لای لای امشب شب عزادوری برای شش ماهه حضرت امام حسین علی یستر هست این آقای کوچک این کوچک مرد بزرگ حاجت های زیادی رو می امشب امشب هرچی میخوایید از این طفل شش ماهه بخوایید التماس داره خیر خدا نگه سلام بر و سلام بر شعر سلام مجالس ما مجالس حسینی یعنی مجالس ضد ظلم مجالس ضد سلطه مجالس ضد شمرها و یزیدها و ابن زیادهای زمان موجود زمان حاضر معناش اینه. این استمرار ماجرای امام حسین به امروز دنیا پر از ظلم و جور است. شما ببینید چه می کنند. در فلسطین چه می کنند. در عراق چه می کنند. در کشورهای گوناگون چه می کنند. با ملت های دنیا چه می کنند. با فقرها چه می کنند. با سروت های ملی کشورها چه می کنند. عظیم حرکت حسین بن علیه علیه السلام شامل همه این میدان وسیع سی